هفت دقیقه تا پاییز نویسنده محسن تنابنده بازنویسی فیلمنامه نامه نادری کارگردان علیرضا امینی بازیگران هدیه تهرانی میترا، حامد بهداد، فرهاد، محسن تنابنده، نیما، خاطره اسدی مریم، ارشیا آقا حسینی، امین، حدیث کازنی، سارا، آهنگساز علیرضا کهندگیر، تهیه کننده سید جمال ساداتیان امیشه از خودم این سوال رو میپرسیدم که این ساختمونای سر به فلک کشیده و این طبقه که رونمای ای هم دارم چطوری تمیز میشن؟ آخه کسی نمیتونه از داخل بیرون این شیشه های بلند و بزرگ و تمیز کنه؟ جواب سوالم اینجا گرفتم. کاری که این مرد جوون داره انجام میده. یک کمربند ایمنی پوشیده که از پشت بوم ساختمون به وسیله یه تصم نقاله کنترل میشه و همینطور که بین زمین و هوا آویزونه با یه پمپ آب پاش کپسولی و یه تیه شیشه شوی طبقه به طبقه پایین میاد و ها رو تمیز میکنه. جالبه به هر طبقه که میرسه با یه ماجرای روبرون میشه و همه از دیدنش جا میخورن یه طبقه که وسط دوای کاری هم. یه طبقه که دارن سیغه میکنه. یه طبقه کلاس خانماز که تا اونو میبینن فوری چادرشون رو سر میکنن حتی با کارگر خسته‌ای که توی واحد خالی داره خستگی در میکنه خوشبش میکنه خلاصه کار خیلی خطرناکیه اما این مرد جوان خنده از لبش کم نمیشه <تصفيق> از طرف یه زن جوونی یه پوشه دستشه و تو راه روهای دادگاه این طرف اون طرف میره و از این اتاق به اون اتاق بیشتر از ناراحت بودن نگرانی میزنه تو چهرش خب حق داره گرفتن هزانت بچه کار ساده ای نیست نگران نباشه از طرف نگران نباشه درستش میکنم؟ نگران شما ما بچه ها برده برو کار ساده باشه منم ازداریان و خب که به دستش می تو هم هفته دیگه طبیعتم به دستش می رسه بای هفته خیلی دیر نیست؟ توی باسته لبیتونم به زمت وچه هست بگیرم سعی میکنم رأی عربی که پایت بگیرم به هر نوشه به بر توی یه واقع پردرخت اما پایزی و پربرگ یه عالمه عروس و داماد جلوی دوربینایی که قراره شروع خوشبختیشون رو سبت کنن رجمید این هم یکی از خاله این نشم. اینو داره یکی دیگه اش. من من منظور حایک می کنم چه خبره. زنگ زنده ورطه دیگه منو خارج باتری من تموم شده. عوض کنم یا خدماتو برای یکم من چیکار می ما رو مسخره کردیم زاین زدنی هم که همکاران بیاد تو ساعت ساعتی فقط کارتون رو انجام بده مگه عکس زله حرمی که دیگه بیاد بنازه نگران نباشی کارش خوبه چرا متوجه نیست امشب به شب زندگی ما خانم من باغ اجاره کردم ساعتی خدا تو پول اجاره این باغه این صحنه به خدا یه اتفاقی افتاده باید برم اصلا اجاره اش به جهنم. این همه اونایی که کاپشن پاشا بلند کوفتش کو مهمون دارم اتاق اجاره کردم چی کوش کوشه بهش کارتونای با همون زن جوان که تو دادگاه بود داره بار یه ماشین میشه اونم بزن آقای کی تو وان کارتونا رو پایین و آقای قرمزپوش اونا رو پرتش میکنه تو و زندگی ما یه لحظه صبر کن خدا درسته گفتن پایین نه دو بیدار پایین به گفتن ببینی کنی دو ببینی کنی دو ببینی کنی دو ببینی کنی دو ببینی کنی ای یه مرد جوان دیگه هم از بالای ساختمون آویزون شده و همراه مرد قبلی در حال تمیز کردنه که این سخر نوردو چند تا شیشه یکی میاد سمت مرد جوان اولی پاهاشو به قاب پنجره کناری اون تکیه می فقط گفت هر هستطریق خطور تو خونه چهکار فقط همین از اون طرف زن جوونی که منتظره خواهرشه گوشه یه دری یه خونه تو پیاده روی کوچه کوچ وای ساده و آروم آروم داره اش میریه و چشم به با دیدن ماشین خواهرش بغزش بیشتر میدهید همین کود؟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 لعنت به پدر مادر من اگه دیگه این خونه رو اجاره بدم ببین دربیری بالا وسالو چرا کلید در خونه رو به خواهرش میده نیما هم سری از میون زمین و هوا جس زده رو زمین و بدتر که یه موتور الانم رسید داره کاپو <متحدث> از موتور پیاده نشده میاد سر کارتون تلویزیون با میتران بزاقوری چی گفتی یعنی چی چی؟ هستم با قاتی اساس رو هم سلام. سلام. دادا ستاره خدا. بذارین من می‌گیرم سر خدا. نمی‌کنه. سر منو به خدا. نه نه نه، ولش ولش. بچه با سختی میرسن به پاگرد اول ای ما چیزی ازش ز شب ورسیا چی به چه دیگه که برنامه میگه رو نیست. یه دختر چهار پنج ساله خوشگل موساف توی سرویس مهد کودک با دوستاش قرق خنده و شادیه خاله همین کجاست همین بابا شفتن ماسا تقدر یعنی تولده من نمی مگه تولدت که یه مردادم فردا چرا من هم دنبادش می آرامش خاله اونا چیه؟ دوله دعا کردیم خودت تولد چه دسته باید بگیرم؟ لاش نه که بگیرم بخشه خیف نادر زنگ بزن کانسلشو چه جوری آخه یکی دوتا نیستن که زنگ تو خونه نیما و میترا همه از بابا رو پخش و پلا بیخون تو پذیرایی سارو رو کار کنیم گناه داره همه بچه های مهدو دعوت کرده فکر این از کردی؟ این کیه چه جواب نمیدی خب؟ همین رو از دانده جواب میگیم بزن جواب رو چی چی میخوای بگیرش؟ بذار راحتت کنم دیگه بابا حق دارم مدبخت خیلی بانه تر رو کن بره سارا تو بغل خالش؟ بیرسن هلو بابا هل با بابا هلو باریو گشت نمه اگه تو محبت قضا ندادت نه تو قضاش پیاد بود هیچی نخوردی نه پس دستاسو دستاتو بشو برد قضا گرم کن ماریا بقیه اصاسات کو. همه شمی نه یه سرشو که فهرات واسه کارش بروخ بقیه شم هم همهامانش نزداشو میاد. مریم تو راه پله یه رو روبروی نیما میرسه و از خجالت نمیدونه چی بگه. آها. دیگه چیزی نمونده؟ می‌بینی همین بود. آمانم. ببخشید تمام مشکل و خرابیا تقصیر من. نیما با سارا تو قنادی نشستن و آلبوم کیکا رو برق میزنه. نیما دل اونم هستش اگه هسته نمی‌تونه سارا رو بشه ولگرد کنه. بابا چشمه تو ببم. بفرما. باشه نه این بجه چشمه کو ببم. باز نگوه. آره بابا. بیسنمی سارا. آره. نیما که خسته و کلافه است، به ساز سارا میرقصه. حتی طبق معمول پیشونیاشونو میذارن رو همو. آلو. چطوری فرا؟ ای بابا کشتی ما رو با این سارا. بوابسهای خرید تولد بالاخره از قنادی میام. آره. اول سارا سوار ماشین مشته. آره آره. جوشو. نبه جنوب تا این دفعه جنوب شد سنه که بچه ها آرار ببین، حالا اگه تو فردا آزاد شدی که شدی اگه نه ما فردا خودم یه سمیه ملاقاتی از این طرف میترا به زرب و زور از با بساسی مریم و تو تا خوابش جا میگن اینا رو کجا بذارم؟ رو ده رو تخت پس کجا میخوابی؟ خب بقیه اصاس رو بیا بسه تولد سارا رو رد کنی قد جا به خیلی ما میاد میگه این خوالتو خود بقیه از تو صاحبی. مریم از اتاق میره بیرون میترا یه دفعه یاد چیزی میافتد مریم اومدی تو پذیرایی نشسته با آروم آروماروم گریه میکنه بله درست حد زده میترا میاد کنار مریم میشینه و سرشو رو میگیره روشونه شد یه به قاملی برگردن میتونم فرنگرد دیگه حرفای تو بود میتونم چه ساله دارم تو یه اتاق با مادر شویر و پدر شوار و یه لشکر آدم زندگی اون اونم یه که از صبح تا شب بعد دستشون صفره پن کنی خستشان هم نگم آرزو بدن همون تامن دوتا من دستم باشه میرم میرم واسه این بچه ای چیزی بگیرم چقدر با از خودت پول گرفتم چقدر بودک برای فرهادو بدم میخوام تمومش کنم همجوری که نمیشه تمومش کنی تو زحمت چی شروع میشه به این راحتی نیست هرچی بشه بهتر از این وضعیتیه که انم توشم فقط تو ما یه دوست روز من تعمال کنیدی من از بابا و اساسیه رو میتروشم بیرم یه حالاک تیدا بکنم میرم دوش قربا چیه میزنی؟ فکر از راسی ها کنیم <تصفح> <تصفح> امین بود بله. رو بیوارد بلته بله مریم رو تخت میترا بین اسباب و بله اساسیهش بله به پهلو دراز کشده و باز نم نم گریه میکنم متوجه شدم عروس خانم خودشون توضیح دادم میترا در حین حرف زدن با مشتری لباس های شسته شده رو از تو ماشین میریزه توی لگن پلاستیکی بزرگ و به نیما اشاره میکنه که یه خودکار بهش بود شدم درست لگن لباس ها رو میده دست نیما و یادداشت داشت میکن. بله اجازه بدی تونه کابون بله بله, بله. بسیار خوب بعد سرش من یه ساعت قبول دستم قربان شما سرش خدا حافظ چی باز؟ خب ما یه برنامه کار خانجیتی ایران قبول نکنم چرا؟ خب یه رقبه پت گفتم قبول کردن بیتون ما با هم همف سفرم قرار بذاشت به دستموز سه تا کارو میدم بعدی سه زنگ engine بگو نمیتونم بیا. ببینم نمیتونم بیا. پولتو رو پیشکار کردیم کار امروز من کنسل شد. کار تو هم کنسل شد. پیترو زنگ بزن بگو نمیتونم. بابا یه ماه دیگه محرم سفره. کارم از تعلیل میمونیم ها. کا کار دیگه شهرستان تهران نداره. من نخوام شما بری شب جای بیرونی کیو بعد ببینیم. میمونم برمیگردم. یعنی چه جاده سن سون ازارت خطر داره. خودمون خب خب بریم. حرفایی میزنی من امروز اومدم و به صد نفر جواب بدم. یه روز همش می‌دونی چند وقت هیچ جا نرفتیم. می‌ریم سرمون یه بادیام میخوره دیگه. آ، تو مجلس مردان. مجلس دو ساعت تموم میشه. بعدش می‌ریم کنارش خونه سیدخاله. مریم هم حال هواش اون شیزیت رو مریم قبول نمی‌کنه بدون امین نمیاد. بریم با فرهاد حرف بزنیم، دل نمون بده. فرهاد بری باش صحبت کنی. چرا حتماً بریم ببینیم چی. بزنید، پولنش اومده اینجا اسباب asosies شما ورده. حالا تو بز بید شما حرفایی میزنی اصلا که من خودم میرم و امینو میگرم میترا با یه کچ کردن گردن و تنگ کردن چشما و یه لبخند نظر نیما رو میخواد عوض کنه و فکر میکنم که معفقم باشی سارا که کنار خالش خوابیده کلافه بلند میشه و از اتاقه بگیرم مامی تو چه بیداری؟ خالتو خوابه هستی من نمیداره بخوابه بیا پل خودم بخواب اتاق ملاقات زندان شلوغ شلوغ و سربازی مدام اونجا رژمیه سر یه میز خالی نیما منتظره و هی با دندون پوسته رو میکنه وقتی یه زندانی دست به دست با یه سرباز نزدیک میشه نیما از جاش بلند میشه. مراب نشکی چه توشیده؟ نشکیی بگه بله بگه بگه لنگ رو به قسنگی اه لنگ رو به قسنگی سه مادر چرا مشکف شده سیده یادته اتفاقه دیگه خدا بگم چرا باشیم که برش کارم که نشیم می شوست بودی تو هم این از نوم افتاد خودشو انداخ تنامی شنو چی؟ زنش هر از بایی سری میزنه این تا دید بیتا خواهی چهارم یاد شد خود رو احمدشون بینش که چطوری؟ زندانو ساخته و حال اومده بخواییم اتاقم اینجا با سپادش تو زنگ زنگی من بیرونی نه آخر وقت یه بیرونی وقتی دارش نه؟ نه از ببطی سندم خیلی رو چکرم خواهیم سندمون یه بابایی که باش رو درگ این یارو کریم از تا اومده بازیدن و, و زندگی و پول و مال ما وازی کرده خدایا بیان ببینم امیتان بداشت که دقاری یه تو پول و یعنی بیرون بودی یعنی گیرم سه روز دیگه باش. هم باشی نه هم آمار شده خونه شده هم هم این اینم چیکارش میترو چیزی می بابا زنگ بزنی چیزی نگو دیگه چی این رنجای بود که اینجا بشه ما می فارسی از زنه یالا این سه روزی که بیرونم می خوام برم سفر باش یه قول لباس موص برای دورون دادن دیوونی راحت کار با نظره روزایی چا می‌کنیم با اینا راج بکنم برم کاروانو بری باش تا به دردش باشه میتر کنار جدول خیابون کنار یه روزنامه فروشی ماشین رو نگه میداره و حالا هم با آقای موسن چاق داره صحبت می‌کنه. بچه‌موت قبول کنی که فرهاد اگه الان تو زندونه به قادر کارباری آغدی نه. اون مهرمار روزم گوهه. بده بوشه. فرهاد بود بی زبونش خورده داده دسته یه اونم خورده آبم روش. حالا تحسیر مریم. تحسیر مریم دیگه مریم مجبورش کردن کارو بکنه. توییه چت کار می که اون ش کرد این را از شک گرفت پیرات گرفت اصلا من داریش زندم من رو بنششون کن شما به من اسمان داری دارم خواهم دارم. دارم. دارم اصلا خود فراد چه تاجی به سر من زدی بخوا بچه اش بزنه خ اجازه همین با مادرشه برو باکس فحبت کن ال فس کنین اربمه بهتر می بید من اری نداره خب باشه پس شما می خبری بهشتین چش من همین الان میگه روی چش خدا. خیلی پ اودم میترا خوشحال به مریمم که تو ماشین نشسته و سارا تو بغلش علامت میده که حل. یه پسر شیرینه یک کمی توپول با موای لخت بلند با یه کوله که مریم میبردش سوار ماشین میشه <متحن> و بره پیش سارا سنگلیه خود خوب دیگه خود دیگه ماما که سوار سواش درستم خود دوالا به پرداد پرداد سالاااااااااااااااااااااااا نیما هم به دقت داره کاغذرنگی های نواری رو باز میکنه و با چسب از این دیوار تا اون دیوار نصف میکنه تازه کلی هم از این کاغذرنگی های پرزدار زده دوروبر یک قابعکس بزرگ از سارا که به دیوار پذیر می زده کوسم روز دیگه میام تعویضش میدم. نیترو تون خونه رو مرطوب میکنه و نیما بادکنک باد میکنه که بله. میترکه که. یکی ماریجو میذاره. داداش رو به نریرسیم اینقدر خستیم دیگه حوصله این کارا رو نداره مریم، بجو. اومدم، اومدم. آی. نیما. چیکو؟ حتا این پونز رو فرشه. بابا سارا ریخته رو زمین دیگه میتونم چسب بیارم. نمیخواد. خوشه این برسلو جمع کن ماشین کلیرسه نیما این لباس مشکی رو شده هم بزن بابا همه بابا سلام آقا نیما خانم سعید همیشه چند لحظه بیاین دم در کشی بیاری مالا خیلی ممنون پایین وایست دادم الان میان خیدنات کیه خانه سعیده تو این هفته یه دفعه دیگه هم بود من یادم رفت بگم چیکار داره با؟ تا دا با راده شوهرشه بگم من برم آنمیم سارا یه یه بار بابا کمک کن بابا پلی آباش بابا سلام خالجو بایی خود رو تو تره کنم دیره ما شده به به آقا امینم از همون در اومده امینو با حوله تنپوشش بغل میکنه میبره که لباس بپوشونه اما از پنجره هوای پایین رو هم داره و میخواد زودتر از ماجره سردر بیاره سهید قبل از این اتفاق برش بیاخته سهید قبل از این اتفاق براش بیاخته چیزی به شما نگم چیزی یادم نمیم مثلا چی دو روز قبل از این اتفاق براش بیاخته خونه ما در جهنیو نموده من فقط میخوام بگونم از باره باژ افتاده به خودش رو انداخته درستش من همزمون با اون دیواره بونم نفهمیدم چی شد این ندیدم اتا من قبل از اون روانم که تونتون میز دفعه من مزاحمت میشه. نه خواهی بالا. خیلی ممنون. تو جمع میکنه و مريم آروم و آهسته لباس امین و مرتب. مرتاد. مامانی مريم آبادي منو برید داریم. هوا سرده تو آب بیام. کی فردا. بر میگردیم نباشی برم گردن نیمایی چیزایی فهمیده ها نمیزه چیزایی راجبه خرابکاری و خرابه اینا به هم نگران طلابت داره با هم که درصد دوست داره مرکه باشه دیگه دیکه برو مردم ای چیزایی راجبه خیلی زدی نگیر حالا فرحاد دفعه فکر بد جواب هم مرکه چه فکر میخواد بکنه؟ تو چقدر نگرانی حق ته حق ته. مگه داری کار خرکتی میکنه بهتون بینو بیشو مریم باییم سباش همز کاردم ماما نیماره من یه جا بست که همچنان تو فکر فقط امین تو آقوشش میگیره بایی با تو میشه. سارا یه ظرف پلاستیکی بزرگ احیانا قضاست رو میاره بابا دست با خودش ببا اینا بگی دستم افراد هنگه قربور دسته قربه مامانه خاله بگو میان بیشد بودو چشم. مردیم خواهی فرده ماما بیا ماما نه مامانی این فرده ماما. نه خوب بونه دارم فرده تون سپور بونه امینم با یه ماچ گنده از مامانش کافشنشو نمی میره پیش سارا امان از دست نیم و وسایل خوب جاسازی میکنه و بالاخره راه میفتن خیلی زودم به ابتدای جادی سرسبز میرسن البته هنوز اول در هنوز اونو از شهر بیرون نرفتن که فرهاد تو هوای بارونی از زندان آزاد علت البته مبقید لخ لخ کنون کچه های قدیمی و پرپلر رو که جوی آبش به خاطر بارون پر آب شده رد میکنه صاحب خونه میترا و نیما که اداره از خونه بیرون میاد یه دفعه رخ به رخ میشه با فرهادو که همون لحظه داره کلید میندزه به درد که بده تو خونه سلام ها حالت خوبی؟ خوبی؟ بربانه چسی که؟ خوش گذاشوی؟ خوبی؟ شما خوبی؟ بربانه چا؟ تو؟ آره دیگه کلید خمه میوالیش درمشن برم بالا برو بالا استراحه کن برو بالا بپرمی بپرمی بپرمی بپرمی خیلی خوشی برو بالا استراحه کن آقا پر که خایی رشی برم بپرم فرهاد انگار نه انگار که مرد صاحونه اینقدر تویلش گرفته. وقتی میاد تو خونه بی توجه به آزیم بندی در و دیوار همون نزدیک در پشت میزی گرد چهار نفره میشینه. با بی شال شالگردنش رو باز میکنه و سرشو میذاره رو دستش رو میز. حوصلش نمیذاره زیادی بشینه از جاش بلند میشه و یه چرخی میزنه. تازه متوجه آزییم بندی خونه میشه. یه نیم نگاهی به اطراف میندازه و انگار دنبال چیزی میگرده ولی بی تر از این عرفاس که به بارسش ادامه بده. بلو میشه روی کناپه و خیره میشه به سقف همینطور قرق فکر وقتی هم که به پهلو دراز میکشه دریق از اینکه که لحظه چشماش رو ببنده خیره میشه به زمین و هی فکر و فکر و فکر یه دفعه نگاش به کف دستش میفته حتما من شماره نوشته که دست میبره سمت گوشیم خب شماره ای رو که گرفتی کسی بر نداشت چرا باز دوباره شماره میگیری؟ بزنی چند دقیقه دیگه احساب نداره خوب مسافرای شمال هم که تو جادن هی hey, پیچ و خم میخورن با پیچ و خم جاده از پنج به پیاس از پیاس به پنج از پنج به یک از یک به پیاس از پیاس پنج. بغالی. از پنج به باقا از چه دوباره از از دو؟ از یه دو، یه دو، یه دو، یه این جان بابا این باعث می شه بابا افن خیلی بس میاد البته شب تو انگل بی هم جاده که رسیدن باید از یه راه فرعی وارد جاده خاکی بشن که کنار اون پر از هیزمای فراونه و مردی با پشته هیزوم پشت هیزم پشت موتورش از را میبسید. فرها تو تاریکی با نور شله فندک کلید تو قفل در میچر و در خونه رو باز میکنه و با چغ ابوس و در هم میاد تو خونه تاریک خیلی آویزون و خسته و کلاف و غمگین میره که جلوی آینه همه این حساش بهش ثابت بشه شدت جلو پاغذش رو توی یه باری که نوری که از قیابون و حتی بخاری افتاده تو خونه و خونه روشن کرده روی کاناپه ولو میشه و چشماش سیاهی میروف فقط تو این تاریکی چشماش شله آبی بخاری رو میبینه. نگاشو از روی شوله ها میچرخونه به شیلنگ گاز باخوید نه نه تو رو خدا همینطور که بیحال آب سرازیره به زور شیلنگ گاز از فلکش میکشه و شلعه بخاری هم به سرعت کم و کمتر میشه و بدم. نیت رو همینطور که دوربین رو دوششه و دست سارا رو هم گرفته جلوی عروس و داماد که پیش میان عقب عقب میره. نیما و امین و مریم هم با جمعیت راه افتادن. میترا با دوربین فیلم برداری دور جمعیت میگرده و دوربین عکاسی تو دو دست مریان یال مراحین بدهم بیا بون دلار دلار دو دخترانی آخر سر قسم بدم که شیله گاز بازه با فرهاد دمر روی کاناپه بلو شده با چشما و دهان نیمه باز به پیغام گیر گوش میده سلام خانم ما من خانم سعیدم امروز خبران که سعید خود خوشی کرد حادثه نبود آوان ما تو شما بگید حال من با چی کار کنم باید فکر نکرد که بعد ارگشت بلای بعد سر من میاد. به خدا هموز خاک سعیدی سرد نشده دیشب صابقونمان اومده میگه دست نداری ازدواج کنی تو رو خدا رو هم بگید من باید چیکار کنم دیگه هیچ چیزی واسه هم مهم نیست توی جشت نیما امینو بقل کرد کرده. مستقر بذاره سلام همون حالا وقتی شوکی هم پیزه <بارس> <تصفيق> شو بابا <تصفيق> تو که بر بابا پیغام بذار بابا سلام خوبی چه طوری قدرت منم بابا الو بابا سلام جون سلام تا فرهاد از جاش بلن میشه به شدت بالا میروی حقش زمین میشه و آب چشم دهنش بابا میکنی؟ نه بابا دارم هم کجایی؟ نه اینجا تو من عروسیم دامنجاییم نه خونمم نه خونه داری؟ جهده باید ها هلید میرسه کزه بودی؟ حالو فراد نا بگو چیه؟ خب. ببین فراد باید یکم با همه حرف بزنیم خودم زمی دارم دارم حالو حالو فراد چیر گازو میبنده و میاد رو تخت و اتاق خواب دراز میکشه ماشین مسافرها از راه رفته پیچ در پیچ دارم از راه رفته پیچ در توی یه لحظه یک بزرگ درخت سر یه پیج ماشین ظاهر میشه اینا چسبیده به فرمان تمامی سعیشو میکنه که ماشین رو مهار کنه اما ماشین توی ریگای جاده سر میخوره و چند دور دور خودش میچرخه و بلاخره چپ میکنه و روی سقفش سر میخوره و باز چند بار چرخیدن روی سخفش وسط جاده تو گلگیر میکنه از این طرف فرهاد به زحمت از روی تخ بلند میشه و میشینه و مات و مبهوت به روبروش نگاه میکنه. میترا به زحمت در ماشین باز میکنه که در کنده میشه و یه طرفی میفته و اون با سر و صورت و دست خونالود خودش رو به سختی از توی ماشین میکشه بیرون نیما با صورت خونی یا خدا نکنی نیما نه زنده است نیما با صورت خونی افتاده رو سقف و چشش حرکتی نداره که با صدای میترا به حرکت میفته و تکون میخوره امین نیما بای از باک ماشین بنزین میریزه بیرون زود باشین میتون مریمو به زور از ماشین میکشه بیرون نیما هم میتونه بیاد بیرون آکه مریا نیما میره سراغ بچه ها بچه ها بی حرکتن وای موازف باش بنزین ریزشش زیادتر شده مریا مریا مریا مریا مریا مریا نیما رو بغل میگیره و میارتش کنار جاده و همین موقع ماخ... وای ماشین آتش گرفت سارا! سارا! چرا نیما دو طرف ماشین فریاد میزنن؟ نیما میخواد با کاپشنش آتشو سمت سارا خاموش کنه که کارشن رو میگیره و خودش میره برای کمک به سارا. نیما میتونه سارا رو از ماشین پر آتش بکشه بیرون. آنیو کنار جاده سرجاش وایساده و زجر میزنه. میتره سارا رو بغل میگیره و هم, هم همراهشه. نیما با تمام وجودش میدونه که ماشین چیزی پیدا کنه هیچ جا بوی از آدمیزاد نمیاد چه برسه ماشین نه مثلی که یه ماشین یه ماشین تو جاده پایینی پیدا شد باید سراشیبی کنار جاده پایین میره و جلوی ماشین رو میگه ماشین که باره هیزم داره نمیتونه همه رو سوار کنه میترا و سارا سوار میشن و ماشین دور میزنه و به سرعت دور میشه نیما هم امینو میگیره زیر بغلش و با مریم پشت سر ماشین میداره ما. خوشبختنه یه ماشین دیگرم پیداش میشه و هرسه سوار میشن مریم که خون از سر از زیر امینو مکن گرفته تو بغلش و امینم از ترسش گریهش بند نمیاد نیما که خیلی عصبیه همش در حال دعا خوندن و نگاش با آسان حالا نیسن بیمارستان نیما به سرعت از ماشین پیاده میشه مریم هم سریع میاد فاین، اما پاش پیچ میخوره و همونجا میفترسه آنه مدرم ازانی داشتیم کردستانیش که ها بفرمایید بشی دکتر ورچی سارا بیاین سارا بایدی بله بله اعزام شو تهران کی این اروپی میشه حالش چطور بود نگران نباشید اصلا فرض میش تهران خانم دکترها تشخیص این باشی ای تاکسی ای چیزی توله داره بیمارستان واصل شد کدوم بیمارستان؟ حوالی تختگی خوشبخت واس نیما امینو میزنه زیر بغلشو گرم افتاد تو آمبولانس که چراغ زنون داره به سرعت میره پرستار داره به سارا تنفس مصنوعی میده ماسه اکسیژنو میذاره و روسیش یه چی سارا سارا من کار چی؟ چیزی رو نیترو بالای سر سارا با وحشت و نگرانی نشسته. با علامت پرستار آمبولانس توقف میکنه کنار جاده. خدا به خدا این ماجرا رو, رو, رو نیست؟ <تصفيق> پرستار به زور میترا رو از آمبولانس بیرون میفرسته اما میترا از جلوی آمبولانس و کارهای پرستار نگاه میکنه پرستار از تمام وسایل موجود برای اکسیژن رسوندن به سارا کمک میگیره اما یک مرتبه نگاهش میفته به آروم میشه. موچه دست لاک زده و سوخته و خونی سارا رو میگیره که مطمئن بشه نبزش میزنه یا نه پرستار نمیتونه به سمت میترا نگاه بندازه دست سارا رو زیر ملحف پنهون میکنه و چراغای دستگاه ها رو خاموش پرستار بالای سر سارا آروم میشینه و پشت به میتراست میترو هم آروم و بیصدا فقط رو رو و خیابون بی انتها رو نگاه میکنه اما همچنان آمبولانس با سرعت راه ماشین آروم از خط وسط اتوبان این گوشو الان واقع این اربانی اومدی زندان ملاقاتی من برام لباس آوردی بعدا نمیگی که این از من تعهد طلاق کرده فرهاد نیما چرا ما تونی من تو رو بس نیما من تو اصلا قسمت دادم گفتم گوش کن گوشو میخوچ لغتش نکو فردات چه کاری نکن شمال برام نمیالا بده چی میگم ببین هر جا اصن خودتو بره تو بیمارستان سوخانه و سوختگی بیمارستان سوخانه و سوختگی ما چاپ کردیم بگو بگو ببین ما چپ کردیم ماشه آتیش گرفته حنافتارا میزار آوردن اونجا الو برا برا از کجا زنگ میزن یرون من سنر روزشت چرا تو الان نگفتی؟ شما نگهبان بیمارستان وسط فرهاد مسئول اطلاعات ایستاده اما نمیتونه فرهاد آروم کنه. راه قاینه. از یه شما راست بیمارستان داره تماس می‌گیره که نیرو بفرستن. تو این قالاقیل یه مرتبه فرهاد یقی نگهبان رو میگیره و اونو میچسبونه به دیوار رو میاد بزندش که آقای دکتر محترم میاد اونو میکشد شکر اما فرهاد که دست بردار نیست <تصفيق> همین موقع نیما و مریم و امین میرسن نیما به سرعت پله ها رو دوتا یکی میاد بالا و دعوای فرهاد رو که میبینه در خوشگش میزنه و در دم چشاش پر عشق میشه آروم, آروم به قائله فرهاد نزدیک میشه مریم هم تا فرهادو میبینه پشت در ورودی به راه رو میشه فرهاد تا متوجه نیما میشه اول با کف دست میکوبه تو پیشونیش و بعد میره سمت نیما نیما با بوخت فقط نگاش میکنه چی شد نشده با شد بابا به زور میخواد بره سمت راهروی دیگه که فرهاد و دکتر جلشو رو میگیرند فرهاد که تازه مرگ سارو باورش شده فریاد میزنه و از فریادش امین um باز به گریه میافته همینطور مرگ همشکش سرازیه همچنان دکتر و فرهاد به نیما چسبیدن رو نمیذارن جلوتر بره که سر آخر فرهاد نیما رو محکم تو آغوشش میگیره و نیما بغزش میتره که با فریاد زجه میزنه <تصفيق> مریم گوشه دیوار رو دو زانوش نشسته و آروم آروم می‌گیریم. دیگه نیما نای براش نموند. خونه میترا و نیما تاریک تاریکه. یکی چراغ راهپله رو روشن میکنه و کلید تو قفل میچرخونه. ایفو این که میتراس. اینو کجا می‌بری؟ س سارا رو تو ملحفی سفید تو آغوشش محکم گرفته و البته دیگه چشاش عشقی براش نمونده میترا با سارا راه افتاده تو خونه که انگار برای آخرین بار خونه و آزیناش رو به سارا نشون بده تک تک کاغذ رنگی ها و باد رو دونه دونه رو نگاه میکنه و حق حق میزنه آخر سر جلوی اکس سارا میسته و کنار باد بادکار سر جاش رو دو پاش میشینه و صورتش رو صورت ملحف پیچه سارا پنهون میکنه. Ha, ha, ha. سرعت خونه در قفله از بس که دستش میلرزه به سختی میتونه کلیده تو قفل جا بده در رو باز میکنه همه یه خونه رو با یه دید چرخ میزنه اما نیست اتاق سارا میترا میترا میترا جان میترا خانم میترا جان در واکن میترا میترا بچه بچارو ببینم در واقع میترا بچه گناه داره آسیا داره در واکن کد میسوال چارو ببرم میترا میترا بچه من آسیا دست در واقع کد بفرمیترا میترا میترا نمیخوام ببرم دست در واقع کد تو در واقع کد می‌خوام نه همونجا پشت در میشین. آقا بعد بگذارم نه، منم می‌خوام استخفاطون بیامون طرف اینجا بیمارستان. چی شده؟ یه چیزایی درست شد؟ ببین منو دیگه به نکنید. به شما آقا شما من شما اگه میتونستین سین جلوی جنازه رو می‌گیرید که نبرم میرم. حالا منو شوهر منو ببرن، خودتونو بعد ببرن. بعد بس در این بیمارستانو. طلا خلاص واسه سیاتم اومد چند تا تخت تختر جمع کردی بودی کار رو ندارم براش سر میخوام لعنت به امین رو امینو و مرمیداری میوینه نه بود من زن با تو هم. با تو بودم با تو بودم برو خودتو رو خدا داد دادخواست طلاق دادم مردا چند دقیقه میرسه دستت امضا میکنه خلاص با اون که براش سر خوب این حرفایی هم که شنیدم و راجع به خودمون نمی بعدم اینت با این کارای تو شنیدم هیچ نگه دار. چقدر کردم. نه، دور دور هفت می‌زنم. مامانم دارم به حرف میزنم. ما... به خدا دارم حرف می‌زنم. وا تو بودم. چش چش. بیا جای یه حرف پای و خب؟ که حتماً مثلا میگن اتفاقاً هم میسرون ایمان باشم. فهمیدی؟ چی شد؟ هر چی. بریم الان خونه ببینم چی شده. نه، دادا تو رو خودت چی شده؟ چی؟ خب چه نیروی انتظامی هم دم در خونه است. ایلو چرا نشه؟ نه کارو. این تو بچه‌ای باشه نه من این کارو. باشه بچه‌ای باشه مادرش دکتره کار کردن. زاروش چش چش. ادباری افتاد به. یادت آمد بایچه نداریم، بایچه آقایی برهاد که اجازه نده ساحب بیاد تو خونه مریم و امین میان پشت در اتاق بشه هنیما مریم تکیه داده به دیوار رو حق, حق میزنه و سر امین گرفته تو شده من تو نکردم من به شما ویلا شما تونستی مادرش فرهاد آخر سر کنار ساختمان تکیه میدن به ماشین نیروی انتظامی و سه تا با هم مشورت میکنن نیما گرفته و مبهوت هنوز پشت در اتاق مرگم اون طرفتر و فرهاد با لیوان آب از آشباز خانه میده با باون. صدای پیغامگیر دوباره انگار همه داغشون تاثم میشه بیا بیا باشو چرا گفتون توی که چرا؟ این نشسته رو پای باباشو آب لیوانو سر میکشت سارا بود آب سارا سارا اصلا این بلند دیگه خاله نگم رو خوسته میخواه شرگر زختش چی؟ زختش. کنی مدت با با با از مصفرد مه دکه که بگم به مامانم نگفتا با ترس داد مجا مگه نگفتی نه نگفتا چرا نگفتی چرا اما بهم گفت چرا فقط مبخود مریمونیگا شما میدون از اینجاست شب هم نمیده چراستم به من میترام میدونه مریم میره سمت فراد و امین میخواد امینو ببره که امین دوتا دستاشو حلقه کرده دور گردن باباشون نمیخواد بره <تصفيق> مریم امین خاشو که من امین رو گرفته و میخوان برن تو اتاق <تصفيق> فرهاد نمیذاره و تو این وضعیت میخواد تکلیفشو با مریم روشن کنه رو به روی امین بابا ایرانو همین میره تو بغل نیما. که هنوز مامورای نیروی انتظامی جلوی در خونه منتظرن و هنوز چراغ گردون آمبولانس روشنه. فرهاد مید سر امین که روی کاناپه خوابش برده و اونم به سرعت بیدار میشه فرچکی. فرهاد شروع کنه به نوازش کردن امین. بلند میشه و دور خونه میچرخه و میخواد تزینیت رو از در و دیوار بکنه که دلش نمیاد. یه معمورا پشت در خونه قدم رو میره مریم چشمش از خواب و اشک و خستگی نیمه بازند نیما هم همینطور پشت در اتاق منتظره و سر به دیوان. هیچی از کچکترین اقدامی نمی تا اینکه میترا یه مرتبه میترا در رو باز میکنه من میترا خانمو نایدم شما اگه دیدونش از حرف من بهش تصدیت بگین خدا هم که حال روزه بگیم شدم آقایی اون بگیم تصدیت میکنم قم آخرتون باشه با اجازتون خدا سلید خدا سلید خدا سلید نیما رو فرهاد روی هم دم در خونه ایستادن نیما چشمش رو از همه میدازده جز فرهاد که وقتی فرهاد میاد سمپش سر میذاره روشونش رو میزن دیگه فرهاد، فرهاد،, فرهاد فرهاد دیگه پروش ندارم پشت در خونه میشینه فرهادم کنارش میشونه مریم اومده پشت سر فرار کارگرها صندلی های کرایه رو میبرن تو ماشین نید آموز رو مریان میم یمارستانسیت ش۶ شی دا می خبیکن پول دارم با گرم پول نیما تو این حالش هم از رفاقتش کم نمی میخواد پول بده به فراد نیما که حالا تنهای تنهاست آرومش میز مریم و فرهاد از این پیاده رو به اون پیاده رو قدم میزنن از این خیابون به اون خیابون مریم فقط گریه میکنه اصف و بسرس ما خونه بیمانویسو چرا میکنم آه میدونستم بسطبه هونه کردی طبقه که ندید من همچه فاجه ای اتفاقی آدم مراهات میکنه ولی خب حرف دارم میزنم نما حرف میزنم باید چی کار میکنم بایدارم الان وقتش نیست چرا؟ چرا شیش ساله همیشه هم الان وقتش نیست بعد تو اصلا نمیده همچه دخصیل منو چو که نمی یاری درسته؟ عذاب و اجدام به من نده یاده تم اون اول گفتم آه نمیشه بیا تمومش کنی گذاشتی؟ من که میدونستم به اینجا میده سوالتون تو گفتی نه گذاشتی؟ یادتی؟ یادت نیست؟ بروزی؟ ها؟ یه نه نکنیم من که همه نمیتونه که اون از اینجا میده سوالتون از کجا دارونم؟ میبینی علاوه با همه دروغ گفتم خودمونم باورمون نشد. چه دروغی؟ ما تنه کاری که نکردیم زندانی کردیم. دروغش نکو. من توی این مدت یه کوتا بودم دلیل از چه مریه؟ بس کن. تو خلاص همین مشکل ما زندان رفتن کنم پس باز چیه؟ هر چنته باید به دادخواست‌ها نامه شما می‌خوام که تو زندان بودی می‌خوام تعلق علاقه بگیرم. خیلی خارها. به جان بودی دیگه برنامه‌گرد انصاف داشته باشه خودت. میدونی همش تقصیر من نبوده. یه زر از این مسیلتی به وزیگردنه من نمیتونم این کار رو بکنم هرچی مخوای بگی برو بگی نخواه از در خلاقت بدم بر نمیگردم یاد نکن نکن گردی ببریم الو الو میما دونه دونه تزمیناتو از در و دیوار بر میداره و توی یک کس زباله مشکی میریزه وقتی میاد باطبونه که ترکیده کنار عکس سارا رو برداره نمیتونه به عکس نگاه کنه. با بغز و عصبانیت و ناراحتی همه کاغذ رنگی رو تون تون میکنه. الو الو تسلیت میگم اشالا هم نبینه شما خود سای وزایی الو. الو, الو الو الو نمیتونه حرف بزن حالش خوب نیست نه از سر خاک که اومدیم رفته تو اتاق خودش رو کرده تو مجلس بچه هم خ... خاک کرده میگه باید من من خودم چند بار به شما تلفن زدم نتونستم پیدا کنم خب بچه رو که نمیشد نگرد بری که یه لسل گوشی یه لسل گوشی میره تو بالکن الو الو من صدا میم من هم خودم به شما زنگ زدم هم هم هم فرهاد به شما زنگ زد الو شما رسیدی همین موقع میترای سیاه ها پوش از اتاق میاد بیرون من زنی میزنم بشم من زنی میزنم بهتری بشی ایچی برای دیرون ما خوری برای مریم و دویدون دستشو گرش بگی نیما میره تو هاش بسخونه ها میترای از تو جا کفشی کفششو رو بر میداره و میپوشی یعنی چی یک کار نخواستم. با لیوان آب میوه میاد بیرون میبینه میترا داره لباس بیرون میپوشه و وسایلشو جمع کرده. میترا چی؟ ها؟ چه لباس پوشیدی؟ کجا می‌خوای بری؟ میترا فقط گریه میکنه و هیچی نمیگه. فقط مابوت یه دفعه اوسه درست میشه. ایسو چی فرامیکنی تو توی وضعیه؟ یه جور رفتان میکنی گوه همیشه چی تقصیر منه اتفاق دیگه اینه بده من اینه بده. ایمیتونم. ایمیتونم. میترا در باز میکنه و پایین و نیما دنبالش نیما کیف میترا رو ازش گرفت خجا میخوای ببین نصف شدیم؟ میخوای ببرم از سر خاک؟ خ... نگو خاید خیلی خوب آروم باش سب داشته باش زمان بده بزن همه چی درست میشه میترا تو اولین پله پاگرد میشینه و صورتش رو میگیره تو دستاشو نیما چه میتونستی رجالش بسید چه چه میگی؟ چه چه تا میگی؟ من کاری میتونستم کردن خودت که اونجا بودی من کجا میدنستم آشان آتیش میگیره بابا تو خودت گفتی شما. بریم شما خیلی منم آروم باش، آروم باش یه بری باده ها بشینیم حرف بزنیم همه چی حل میشه بسیده منه که آوردم توی خیلی خوب، خیلی خوب <تصفح> بس را؟ بس را چون سارا بچه ای من هیچ من قرآن روزه من سداش تو سرم به همه جا میبینم من برطر از صد بار از تو بشته بایی کردم <تصفيق> چه کار کنم مینچا کشو بالا رسا زنی زن تو رای یه پیداش میشه. نیما با سرعت میره سمت پشت در میست. اما چطور نیما میتونه بره داخل در حالی که کیک تولد سارا تو دستشه؟ امین توی مغازه اسباب بازی فروشی و فرهاد و مریم با فاصله زیادی از هم قدم رو میرن. بابا راه یکی. فرهاد با امین میرن تو مغازه و مریم با یه پاکت کاغذی تو دستش میاد دم در مغازه. امین صحبت میکنه و بعد هر دو میرن از مغازه برو امین همچنان با فروشنده داره صحبت میکنه و عروسکای های رو نشون میده خب چکا پوله نکنیم ده دو من نشوی با آقا یه دیگه میخوام بله دیگه خب با میشه چی بودم؟ این حرفایی که من شنیدم و پس اینا این قما کیه؟ ببین هر کی هر مزخرفی بهت گفته دری بریه من فقط دو بله حقه هم بود هم خام پوله که روی است اون آشغال. خام پول میارم شو که حق منم هست که خب به من من هم من حال من منم بوده مگه می‌خواستم به عمده تا حالا حالا زندگیم همین بود. یه گفت همین چهره من گفتم پولو میگیرم. شبور گفت یه حساب دارم. یه بار گفت بیا من فلان جا رفتن نشو. خب پولمو میرزم به حساب نیامت تو حساب. من فهمیدم همین پول بده نیست. دیگه جواب تلفنشو ندادم. میترام بهشون گفتم نمیخواد خط نمیخواد بردارم بردارن بله میخوا خواهر بنده همه پولا رو اول این اینصبرش هم باهم اومد شاهد امینم باها بود اگه سرش خراب نمیشی بر ازش بخور میترونی ما همه پولا ببین چیکار چی میکن باشن فرهاد دست امین رو میگیره و میرن تو مغازه و مریم فقط گریه میکنه ای ای ای نیترا داره همه رو دوباره به در و دیوار میچسپونه اونم با چه وسواسی نمیتونه براشو براشو نیما خسته و کلافه همراهیش میکنه هیچ جو تناش نمیزه صافه آره گده یک را بردی چرا کنم وقتی همه اومدند باید بیاری تو واقعا زنی زدی بچه مردم بیه نینجا بزرش توی لخشا. ایترا آخر کار داره یه سر آویز رو به دیوار وصل میکنه و یه سر دیگرش رو به لوس رو که یک حب شوشو نبخشید نبخشید دست نزد دست نزد اما میرم جا رو میرم بچه هم بچه هم نمیرم جمعش کنیم بچه فرهاده. مریم نیست؟ مریمم هست میترا کیه؟ فرهاده باز کنم میترا برای چه بیاد پایین؟ با بگم بید پایین بگه چی خودت مینی بالا هر سالی داری ازش میکنی امین، یه عروسه که بزرگ شرکو چسبونده به بغلش رو وسط فرهاد و مریم ایستد چرا اینجوری میکنی؟ دنبال چی میگردی؟ حتی دهنمو درآوردم گفتم ببینم جرئت داری به میترا ما حرفا بزنی؟ همین دیگه واسه همین میگم برو. نه ببینید چی تو زورت به من میرسید؟ شش سال هر کاری کردین، کوچیکو بازار رفتم، وایسا، هر کاری کردیم هیچ چی نگفتم. پزیراتونو کردم، لباساتونو دوختم، هر کاری کردم. راستی زندان این بچه رو تک و تنه کشیدم فکر می‌کنی؟ بعد الان اومدی با یه حرف، با یه دری وری هر دلت میخواد به من میگی. چی میخوای از جون من؟ اینو برو برو میترا بیاد پای. هر چی به فقط بگو بگم بگو چی؟ بگم بگو چی؟ برو بابا هر سالی بری از داشت بگو لعنتی چرا با من جوری میکنی؟ بابا بگو می سوی بهتفایی برو بچه اینو بگیر اینو بگیر اینو بگیر بابا اینو باید با بیو گینا بادو بیو بادو باستان <تصفح> خاله چریکی میکنه فرهاد کو پایین میمونه خاله چی از اینم بیا بریم صورتتو بشورم بیا تو تولد سارا ببینم اون صورتو بشورم سانا سانا شیشه بورده روی زمین موزه فرهاد همچنان دم در منتظر موند مریم مبهوت به تزیینات خیره موند فرخ چی؟ چه نیما میره پایین و فرهاد میاد تو پاگرد. فرهاد میترا آلش هورنینگس برات جشن بچه جشگی. ای میترا، تا میترا اومد نیما میره بالا. مریم میاد تو اتاق هست باباش سراغی کارتونو همینطور که عشقاش دونه دونه و بی صدا رو صورتش میقلتن در کارتونو باز میکنه برایت که پشت سر متر رو میاد در خونه بایدس کس من باید تو خیلی برام بردارم که حالا ما بزرگ شدیم اما باید کردیم کدوم بری؟ الانم نلوائی. سارا تولدش تولدش نیست تولدش نیست توی به خواهش سارا قسمت اسمانی برمان که هیچ وقت نیخواب ببینه نمیخوابی چه کنم فراد میدونم تولدش تولده ساراست من نمیخواب نتو رو چه چه کنم چه چرا, چرا،, چرا با چرا با این برد نکتا؟ ارمان یه بادر نالا یکرم با ارمان بابای من چشم هست؟ یالت خاطر شکر بریم من چه میدونستم تو از زندان اومده برون دیوونه؟ به خاطر تو رفتیم به خاطر برچت رفتیم به خاطر اینکه تو بگیری چیکارم چستیم نکنیم برای چی میخواد برای طلاق بگیریم برای چی دیگه احضاری برای پیار نمیخواد طلاق بگیریم دوستت داره همه اینا پرا زندگیته من باش رفتن من با من با مریم رفتن خاطر این بوده که این زندگی جمع که خوب من نمیخواد هیچو خوب کنیم خوب خوب بکنیم بکنیم بیتبه سرار بکنیم میشه ها فرهاد میان تو نیما داره جارو برقی مکشه نیما ساعت چنده ساعت چند؟ یه رو به یازده هفته یه رو موند کیکو میدون رو همینو نیما که کی میره کیکو بیاره میترا مریم و فرهاد رو وادار میکنه که بقیه کاغذرنگیارو عوضی کنه. مریم شام میاری تو آش بس کن مریم میره بیار نیما و فرهاد با جدیت تمام رو به در و دیوار میکنه امین کجاست شما رو به تعداد سن سارا روی کیک مجمد. امین امید. خاله لباس عوض کردی؟ امید. امید. امید امین توی اتاق لباسش رو می‌پوشه و با عروسکش حرف می‌زنه. سلام. سلام. فکر می‌نامون بابا امین تا بره تو میذن کارخانیش این بابا. هر چهار تا دور میز نشستن و شمعای کیک رو روشن کردن و, و چراغ هم خاموشه. میترا با چشمای خیس به شعل‌ها نگاه کرد. بول رد میشه که روی کارتونا ریخته شده میترا امینو روی پاهاش میشونه و اونم به شمعای کیک خیره میشه و همه رو با یه فوت خاموش می‌کنه هم در دقایق و لحظاتی همنشین بودیم با هم و با ای از آدم های همین شهر و دیار من ملیح شبانیان راوی و نویسنده این رادیو فیلم به همراه بزرگواران علی حاجی نوروزی صدا بردار و فرشاد آزرنیا تهیه کننده و سردبیر خوشحالیم که تونستیم باز هم در کنار شما باشیم ما به این با هم بودنا به خودمون میبالیم پس تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل